بسم الله الرحمن الرحیم فصل المخابراتو فصل بعدی در ربطه مخابره هست مخابره چه هست؟ مخابره اینه که شخصی کارکن، کارگر کار میکنه در زمین شخصی دیگر به قسمتی از محصول و بعض هم از کارکن و کارگر باشه این میگن مخابره مالک زمین رو به یک کارگر به یک کارکن بده که در زمینش کار بکنه در مقابل قسمتی از محصول و بایدر از کارگر باش اما اگر صاحب زمین زمینش رو به کارگر داد کار کرد در مقابل قسمتی از محصول و بزر از مالک بود اون مغش مزارعه میگند پس مخابره و مزارعه مثل هم هستن فرقشون دارین هست که در مخابره بزر از عامل هست از کارگر هست و در مزارعه از مالک هست خب اینجا میگه و ایذا دفع الى رجل ارضا لیزراعها و شرق له جزءا معلومن من ریعها من رئیها لم یا جز زمانی که واگذار کرد شخص زمینش رو به شخصی تا را بکارد و تعیین کرد برای اون کارگر برای اون کارکن جزئی جزی مشخص مثلا یک دوم، یک پنجم یک چهارم فرق نیکنه جزئی معلوم رو برای اون کارگر مشخص کرد صاحب زمین از چه چی چیزی؟ من رئیها از محصولش ره رو دیبالبغاد ترجمه کرده غلطی ها و امتاج ها. این محصولش میگه لم یا جز جایز نیست. پس این که شخص زمینش رو بده یکی گنده میش یا خلاصه اونو بکاره در مقابل قسمتی مشخص در مقابل جز این معلوم از محسول مجا جايز نست وين أكراه إياها بذهاب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاس أما أغر كراية كارت ونكاري جار كراية دات زمين ربو ونكاري جار در مقابل طلا یا نقره یا پولای امروزی یا شرط گذاشت برش تعامی معلوم رو، غذای معلوم رو مثلا بهش گفت شما بیا زمین منو بکار من از طرف خودم یک تم گندم شما رو میتار. از محصول نبود به عنوان کرایه بود اینجا جوازت جایز است خب پس مختصره البته این نقطه رو هم من بگم اون نوع اولش یعنی اگر صاحب زمین، زمین و بکار، داد گرداد اینو بکار در مقابل سهمی مشخص از محصول، در مقابل قسمتی مشخص و معلوم از انتاج و محصول، اینجا میگه جایز نیست، لمیه جایز نیست، خوب، ولی اینجا قابل تعمل و تحجه که امام نووی، ایشون میگه که جایز است. به پیروی هست ابن موزر ابن موزر چون ابن موزر هم می که جایز هست خب و اگر کرایش داد به کارگر که شما آقا بیه کار بکنید زمین منو بکار من اینقدر پول بهت میدم اینقدر طلاب میدم اینقدر نقره بهت میدم اینقدر خوراکی بهت میدم این موری نداره بله فصلون احیاء الموت فصل بعدی در ربطه با احیاء موات یعنی زنده کردن زمین مرده موات چی هست؟ زمینی است که مالک ندارد کسی از اون نفعه نمی خوب و احیاء الموت جایزم به شده زنده کردن یا آباد کردن زمین مرده موت اون زمین مرده رو میگن یا آباد کردن و زنده کردنش رو میگن آباد کردن زمین مرده یا زنده کردن زمین مرده جایز است به دو شرط این یکون المحیی مسلم. اون آباد کنندهش اون زنده کنندهش اگه میخوایم تحت لفظی ترجمش کنیم مسلم باشد مسلمان باشد پسونی که میخواد زمین بی صاحب رو، زمین ول رو، آباد بکنه، حالا اینجا خونه‌ای بسازه یا کشاورزی راه بیاندازه یا شیر، هر چیزی باشه، میخواد ازش نفی ببره، اون آباد کننده مسلمان باشه. وان تاکون الأرض خورة لم يجري عليها ملك ل مسلم. شرط دومی که زمین آزاد باشه. ملکیت مسلمانی بران جاری نباشه یافت نباشه آه، اگر مسلمانی اونجا مال مسلمانی باشه اون موقع دیگه قسم بردن پس ملکیت مسلمانی بران جاری نباشه زدین آزاد باشه قرط دومتی وصفه و احیا احیا چگونه هست یعنی کیفیت احیای زمین به چه شکل است؟ چه زمان می‌گیم که این زمین احیا شده؟ ما کان العادت العاده اماره للمحیا میگه آن است که باشد در عرف و عادت آبادی برای اون زمین. در هر عرفی آباد کردن زمین امارت زمین فرق میکنه مثلا تو منطقه میبینی برای اینکه زمینی رو احیا بکنند، آباد کنن،, کنن دوربرش چهار دیواری میکشن. یه منطق میبینی که با تراکتور گاواهن میزنن مثلا ها یا مثلا با تیر تراکتور بند میکشن دوربرش. خلاصه این به با عادت برمیگرده دیگه، به عرف برمیگرده. پس آنچه که باشد در عادت و عرف، اماره آبادانی برای اون زمین اون صفت زندگردن زمین بعد دیگه کسی حق نداره بر اونجا اون زمینو رو تصرف بکنه اون کلقه عرف اومده و اون عرف موقعی که میخوان یه زمینی رو آباد کنن روش کار کنن چه کارایی رو انجام میدن این آقا اگر اون کار رو انجام داد خلاص این صفت احیاء زمین هست يعني انه احياء کرد و يجب بضل الماء بثلاثة شرائط خب بعد از احياء مواد مسلح مجدئي رو مترح کرد بنام بذل ماء يعني کسی بدون اون آب نیاز داشت این آغا جلوگیری نکنه بخش آب، واجب بس بخش آب، یا بعباره تی جلوگیری نکردن از اون آب بس شرط یک انیف یف عن حاجتی از نیاز خود شخص اضافه باشه که خب برای استفاده خودش چی برای حیواناتش و یحتاج الیه غیره لنفسه او لبهیمته شرط دومش اینه که شخص دیگر به اون آب به اون آب اضافه محتاج باشد چه برای خودش چه برای حیواناتش پس واجب است بزل آب بخشیدن آب یا به عبارتی مانع نشدن از آب بسشارت یکی اینکه که از نیازش و نیاز حیوانش اضافه باشه دوومین که شخصی دیگر چه برای خودش چه برای حیواناتش به اون آب نیاز داشته باشه و سوم سو ان یکون مما یستخلفو سومین شرط اینه که اون آب باشد از اون آبهایی که سرچش آب میاد ان یستخلف فی بئر او عین از اون آبهایی که جانشین سرش میاد چه؟ تو آب میکشی دوباره از چشمه های چه آب میاد سر جش یعنی آب دیگری سر جش بیاد اما اگر این آب توی یک بسته شده بود که جانشین روش نمی آمد یا توی تانکر بود خب اینجا میگه بزل آب اینجا بزل فضل اینجا طبق قول صحیح واجبید برشار همیارن مارد البته اقناه در شرح این کتاب نوشته شده و ایشون چی شرط میاره؟ پس ما این سر شرط بزل ما یا اون بخش آب یا به عبارت دیگر مانع نشدن بین آب و بین اون کسی که به اون نیاز داره واجب هست بزل ما به شرط سه شرط اگر بود شخص باید بگذاره که دیگران بیان از این آب استفاده بکنن یک از حاجت خودش اضافه باشه دو افراد دیگر چه برای خودش چه برای حیواناتش به اون نیاز داشته باشن سه آب از اون آبایی باشه که سر جاش سرش جایگوزین میاد مثلا چاه باشه یا چشمه که جایگوزین سرش میاد ولی اگر یه تانکیری داشت چاره هزار لیتری خب این اینجا دیگه واجب نیست بدل ما چون جایگزین سرش نمیاد ان می مستخلف این اینکه باشه از اون چیزایی که سرجاش آب دیگه میاد فصل الوقف و الوقف وقف به سه شرط جایز است وقف کردن یکی مثلا زمینی وقف کنه باقی رو وقف کنه به سه شرط وقف جایز است یک ان من ما و به معبقای اینه اون چیزی که وقفش میکنه باشد از اون چیزایی که ازش نفع برده میشه با باقی ماندن خود اون چیز. چیزی باشد که خود اون چیز باقی بماند و ازش نفعی برده بشه بله پس شرط اول وقف همین هست از چیزایی باشد که ازش نفع برده بشه در عین حال خودش از بین نره باقی بمونه که زمینی رو وقف میکنه کنه دیگران بیان روش بکنن مثلا و اصل زمین باقی میمونه ممارد مردم میمونه ازش نخی میبهند و این یکونه على اصل موجود و فرع لاین قطع شرط دوم وقف این است که باشد بر اصلی موجود و فرعی که قطع نمیشود این یعنی شده دیگه یعنی وقف شک میکنه اون کسی که این وقف رو براش وقف میکنه موجود باشه بعداً فرق اون اصل هم قطع نشه مثلا به چه شکل؟ اصل اونو میگن که موسیقیم بش وقفش میکنه. فرق اونی رو میگن که بعداً ازش استفاده میکنه. خب، ما این که شخص بگه من این زمینو بر زاید وقف کردم، سپس بر فقرا. اینجا اصل موجوده و فرق هم منقطع نیست. اما اگر اصل موجود نباشه مثلا شخص بگه من این زمین رو موقف میکنم بر شخصی که به دنیا می آید خب اینجا اصل موجود نیست اما مثلا بگه من این زمین رو بر زید وقف میکنم خب زید درست موجوده ولی منقطع هست پس بر اصلی موجود باشد و فرقی که قط نمیشه مانند این که بگه این زمین رو بر فرزندانم که موجود هستند وقف کردم و فرزند هم داشته باشه بعد میگه سپس بر فقاره خب اینجا وقف درسته چون اصل موجوده و فرهم لاین هست سوال لا یکونه فی محضور اون وقف در محضور و حرام نباشه نیاد مثلا یه چیزی رو بر عبادتگاه مسیحی یا یهودی وقف بکنه بله. و هو على ماشارت الواقف و وقف هست طبقه آنچه که وقف کننده شرط گذاشته تعیین کرده وقف کننده به چه شکل تعیین کرده همون طور درش تصرف بشه من تقدیم این او تاخیر در تقدیم و تاخیر مثلا چطوری؟ مانین شخص بگه من اینو وقف کردم بر فرزندانم به شرط این که پرهیز به این اندازه اولویت دارن اگر چیزی باقیمون مال دیگران هست، اینجا تقدیم و تاخیر کرد به این شرط وقف کرد باید این شرط عمل بشه یعنی طبق شرط وقف تصرف میشه در وقت او تصویتی یا در تصویه یا در ترتیب حتی مثلا گفت این وقف بر و اولادم سپس بر فرزندانشان در تسویه معنی میگه شخص بگه اینو وقف کردم بر اولادم و بر فرزندانشان مطلق اینجا هم فرزندان زن مرد شامل میشن کوچک و بزرگ شامل میشن پولدار و فقیر شامل میشن این تسویه هست مشروطی یا اگر شرط کرد تفضیل رو باید به با اون شرط باشه به چه شکل؟ مثلا گفت من این وقف کردم بر فرزندانم که برای مردشون دو برابر زنشون هست که برای نمیدونم دانشمندشون دو برابر بیسوادشون هست این شرط رو گذاشته بود تفضیل طبقه من شرطی که واقف گذاشته تصرف میشه پس و هو یعنی وقف علاماشرت الواقف هست؟ طبقه آنچه که وقف کننده شرط گذاشته است من تقدیم او تأخیر او تسویت او تفضیل از تقدیم و تأخیر یا برابر بودن و برتری دادن طبقه شرطی که کرد طبقه همون شرط برخورد میشه وقف به شکل مصرف میشه و نفعش فصل الهبتو فصل بعدی در رابطه با هبه هست چیزی رو میبخشه به کسی بدون عوض البته اینو میگن هبه پس یکی بیاد یکی از یه چیزی رو در حالت زندگانی بدون عوض به کسی بده اینو میگند هبه و کل ما به اون جازه هبه تو هران چیزی که فروشش جایزه، است هبهش هم جایزه. است هران چیزی که فروشش جایز است هبه آن هم جایز است شما میتونید یک موبایل رو هبه کنید یک ماشین رو هبه کنید آقا بلا عوض به یکی بجید آقا این مال شما باشه و تلزم تلزمو الا بالقبس و لازمی نمیشه مگر با قرص کردن موحوب له یعنی موقع که واهب اون بخشنده هبه کنده چیزو هبه کرد هنوز برش لازمی نیست ولی بعد از این که به اون طرف تحویلش داد دیگه لازمی میشه دیگه نمیتونه بر بگرده و لا تلزم الهبتو الا بالقبض و لازمی نمیشه هبه مگر با قبض کردن و اذا قبابا هالموهوب له لم یکن للواهبی ان یرجع فيها الا ان یکن والدن و زمانی که تحویل گرفت قبض کرد اون رو موهبله موهبله اون شخصی رو میگن که هبه رو بشمیدند و زمانی که موهبله اون رو قبض کرد روا نیست برای واهب برای هبه کننده برای بخشنده که از هبهش بر بگردد مگر این که والد باشد یعنی والد اگر به فرزندش چیزی داد میگه میتونه بر بگرده و اذا اعمر شیئا او ارقبه کان للمعمر او للمرقب و لورثته من بعده و زمان ایک رو به این شب بخشش کرد بله یعنی امره و رقبه کرد امره و رقبه دیگه چه هست پس اینجا میاره میگه که و ایده اعمر و زمانی که عمره کرده چیزی رو چطوری مثلا بهش گفت اعمر تو که مثلا یعنی اینو تا مدت عمرتو به شما دادم وقتی که مردم به من برمیگرده او ارقبه. يا رقبا اشكرت. قفت ارقبتك هذا الشيء. فإذا مت قبل اعد إليّ وإن مت قبلك استقر لك. أجر من قبل استمر دم. إن شئ بمن بارم جردي. إن درهبة ديجي بيشميت. وagar تو مر... وagar من مردم قبل استو مالتو. مي اگر كسي أمر يا رقبا كارت. اون چیز آیه بر میگرده نه میگه کانه معمری ای مرقبی اون چیز برای معمر و مرقب است معمر و مرقب اونی هستن که اون چیز بهشون داده شده است رقبا بهش داده شده باشه بهش میگن مرقب عمرا بهش داده باشه داده بهش داده میگفته میشه معمر پس اگر کسی امرا کرد یک چیزی رو یا رقبا کرد یک چیزی رو اون چیز برای معمر و مرقب دیگه نمی باشند بلکه برای معمر و مرقب می باشند برای اون کسی می باشند که این چیز بهشون داده شده است ولی ورثت هی من بعده و برای ورثشون که بعد از اونا میاند و برای ورثشون که بعد از اونها میاند